سلام و درود و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان داشتنی کانال هزار افسان امروز هم با یک قصه زیبایی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم اسم این داستان روزانه لاست هر کسی میدونه که اگرچه پریان صدها سال عمر میکنند گای اوقاتم می میمیرند گایی هم مجبورند یک روز در هفته به شکل بعضی از حیوانات در بیان. البته اونها در معرض تصادف هم قرار میگیرند و به خاطر تصادف بود که مرگ ملکی پریان رو در کام خودش کشید. بعد از این اتفاق باید برای انتخاب رهبر جدید گردهمایی بزرگی تشکیل می شد. بعد از بحث های زیاد قرعه به اسم دو پری افتاد. یکی سورکانتین، دیگری پریدامی. دفاعیات اونها چنان به هم نزدیک و مثل هم بود که خیلی سخت میشد یکی رو به دیگری ترجیح داد در این شرایط به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که هر یک از اونها که بتونه به شگف انگیزترین کار در این جهان دست بزنه ملکه بشه البته این کار نباید مثل ترفندهای رایج پریان مثل جابجایی کوها و اینا باشه سورکانتین تصمیم گرفت گرفتا ای رو که هیچ چیز نمیتونست اون رو وفادار نگهداره تربیت کنه و پریدامین تصمیم گرفت از بین میرایان برجسته شادختی بسیار دلفری پرورش بده که هرکس با نگاه اول به دام اشخش گرفتار بشه به اونها اجازه دادند که کار خودشون رو شروع کنن چهارتن از بزرگترین پریان هم برای اداره امور حکومت طی این مدت برگزیده شدند. پریدامی از قبل پادشاه باردوندون رو که پادشاهی تمام عیار بود میشناخت دربار اون بهترین نمونگی دربارها بود ملکش بالانیس خیلی دلربا بود پیدا کردن زن و شوهری که خیلی همدل و هم رنگ باشن کار سختی بود اونها دختری کوچیک داشتند که اسمش رو رزانلا گذاشته بودند چون روی گلوی سپیدش گل کوچیکی داشت از همون دوران کودکی همه فهمیده بودند که خیلی باهوشه و درباریان تمام سخنان نغزش رو حفظ میکردن و به هر مناسبتی تکرار میکردن. یه شب موقعی که پریان دور هم جمع شده بودن ملک بالانیس به خاطر فریادی از خواب بیدار شد. وقتی ندیمه هاش با عجله خودشون رو به کنار به سرش رسوندن تا ببینن چه اتفاقی افتاده فهمیدن که اون خواب ترسناکی دیده. اون گفت. خواب دیدم دخترکم به دسته گل سرخی تبدیل شده وقتی اون رو توی دستم گرفتم یک دفعه ای اومد اون رو از چنگ من در آورد و با خودش برد بعد اضافه کرد یک نفر بره ببینه آیا حال شادوخت خوبه ندیمه ها به طرف اتاق شادوخت دویدند و با کمال وحشت دیدند که گهواره خالیه همه جا رو گشتند ولی نشونی از روزانلا به دست نیوردند. ملکه آروم و قرار نداشت پادشا همین هم حالو داشت اما خب چون مرد بود احساساتش رو پنهان میکرد. همون موقع به بالانیس پیشنهاد کرد چند روزی رو در یکی از کاخاشون در جای خوش آب و هوا بگذرونند ملکه با کمال میل پذیرفت چون اندوهش باعث شده بود که همه ساکنان پایتخت خوشحالیاشون رو از یاد ببرند. در یک شب زیبای تابستونی موقعی که کنار هم روی چمنی نشسته بودند که به شکل ستاره بود و دوازده راه درختی باشکو مثل شعاع نور از اون خارج شده بود ملکه نگاهی به اطراف کرد و دخترکان روستایی جذابی رو دید که از هر راه به اونها نزدیک می میشدند چیزی که بیش از همه چیز به چشم میخورد این بود که هر یک از اون دخترکان روستایی چیزی رو در سبد خودش حمل میکرد چیزی که تمام توجه ملکه را به خودش جلب کرده بود هر کدوم از اونها که نزدیک شد سبد خودش رو کنار پاهای بالانیس میذاشت و میگفت ملکه دلربا باشه که این کمی از نگرانیت کم کنه و بهت آرامش بده ملکه با عجله سبدها رو باز کرد و در هر کدوم نوزاد دختر زیبایی دید که با دخترک دلبند خودش که به خاطرش این همه غمگین بود همسن و سال بودند اول دیدن اونها غمش رو تازه کرد اما زیباییشون چنان تأثیری بهش گذاشت که همه افسردگیش رو فراموش کرد و به فکر افتاد براشون پرستار، گهواره و ندیمه آماده کنه. کسانی رو هم برای تحییه تاب و عروسک، فرفره و خوشمزه ترین و شیرین ترین خوراکی ها به این طرف و اون طرف فرستاد. با تعجب بسیار باید بگیم که هر کودکی به روی گلوی سپیدش گل صورتی کوچیکی داشت. ملک متوجه شد که انتخاب اسم برای همه اونها خیلی سخته. پس تصمیم گرفت تا زمانی که نام مناسبی براشون پیدا نکرده هر کدوم رو رنگی صدا بزنه اینطوری شناساییشون هم آسونتر بود و هر وقت با هم بودن مثل یک دسته گل شاداب میشن هر چی بزرگتر میشدن مشخص میشد با اینکه همشون از هوش سرشاری برخوردارن و دانش برابری دارن اما هر کدوم خصلت خاص خودش رو داره و تفاوت بینشون کاملا مشخص بود به تدریج اونها با اسم مثل مروارید یا پامچال یا هر اسم دیگری که برنگشون مربوط بود شناخته نمیشدند بلکه ملکه اونها رو اینطوری صدا می کرد شیرین من کجاست زیبای من شادی من البته اونها با زیبایی بیش از حدشون دلدادگانی هم داشتن نه فقط شاهزادگان کاخ خودشون بلکه شاهزادگانی از سرزمین های دور با خبرهایی که درباره اونها می‌شنیدند، مرتب به اونجا میومدند. اما این دخترکان زیبا، این دوشیزگان ممتاز، همونقدر که زیبا بودند، عاقل هم بودند و با احتیاط عمل میکردند و به کسی دل نمی باختند. خب، حالا بریم سروقت وقت سورکانتین. اون تمام توجه خودش رو به پسر پادشاهی که از بستگان نزدیک باردوندون بود معطوف کرد و اون رو مثل شاهزادهی ناتنی خودش بزرگ کرد اون قبلا در مراسم نامگذاری تمام شایستگی‌ها و ویژگی‌های ذهنی و جسمی رو که یک شاهزاده باید داشته باشه براش آرزو کرد حالا تلاشای خودش رو در حق اون دو برابر کرده بود و اون رو از هر آسیبی به زیبایی و جذابیتش مسون نگه داشته بود ممکن بود اون فردی اصابانه یا خوشخو، خوشپوش یا بدپوش جدی یا سبکسر میشد، ولی همیشه کاملا سوس اراده بود اون جوون جذابی بود پری قلبی مهربان و عقلی کامل بهش داده بود تمام خساییسی که اون رو دوست داشتنی تر میکرد در اون گرد اومده بود به جز ثبات قدم چون نمیشه انکار کرد که شاهزاد میریفلور شخص باز و باری به هر جهتی بود با این اوصاف وقتی 18 ساله شد در قلمرو رو به حکومت پدرش قلبی نبود که در اون جایی نداشته باشه همه بهش علاقه داشتن ولی اون از همه گریزان بود همه چیز به این منوال پیش میرفت تا اینکه برای دیدار از دربار خیشواند پدرش پادشاه باردوندون دعوت شد با این اصاف دیگه خودتون میتونید حدس بزنید که هنگام ورود موقعی که دوازده موجود بسیار زیبا از اون استقبال کردن چه حالی داشت؟ شگفتی اون از این حقیقت که همه اونها رو دوست داره به اوج خودش رسیده بود. اون از همشون خوشش اومده بود. همه چیز به میل اون پیش میرفت و حتی لحظه ای رو بدون اونها سپری نمیکرد. باید گفت که اون در گوش شیرین حرف زیبا زمزمه میکرد و با شادی می خندید. در همون حال گوشی چشمی هم به زیبا داشت. در لحظات بسیار جدی، هیچ چیز براش لذت بخشتر از صحبت با متانت در چمنزارهای پردرخت نبود و در حالی که شونه به شونه دوستدار قدم میزد، دیگران با سکوتی هم دردانه در اطرافش به آهستگی راه میرفتند. برای اولین بار در زندگی، واقعا دل باخته شد. دلدارش نه یک نفر که دوازده نفر بودن که نسبت به اونها عشق برابری هم داشت. واقعا سورکانتین به این فکر افتاد که این وز واقعا نشانی بی بیش از حد اونه اما پریدامی حرفی نزد. پدر شاهزاده میرلیفلور فلور بهش نوش و از اون خواست که برگرده. اون دوشیزگانی بین به عنوان همسر به فرزندش پیشنهاد کرد. اما هیچ چیز توی جهان نمیتونست اون را از اون دوازده دوشیزدی افسونگر جدا کنه یک روز ملکه مهمانی بزرگی در باغ داد مهمانان حاضر شدند و شاهزاده مریفرور طبق معمول سرگرم خوشوبش با اون دوازده زیبارو بود که وزوز بلند زنبورها به گوششون رسید دوشیزگان گل سرخ از ترس نیش زنبورها فریاد زدند و همگیشون پا به فرار گذاشتند و از میمونها جدا شدند. بلافاصله در برابر چشمان حیرت زدهی همه زنبورها شروع به تعقیب دوشیزگان گل سرخ کردند. یک دفعه زنبورها اونقدر بزرگ شدند که هر کدوم دوشیزهی رو در چنگ خودش گرفت و به هوا برد. کمی بعد همه اونها از نظرها ناپدید شدند. این حادثه شگفتانگیز تمام درباریان رو در اندوهی سخت فرو برد شاهزاده میریفلور فلور که بیشتر از همه اندوهگین بود انقدر پریشان حال و افسرد دل شد که همه به حراس افتادند که اگر از این حال بیرون نیاد حتما میمیره سورکانتین از هیچ کاری برای دلبندش فروگذار نمی کرد عکس زیباترین شاه شاهدختان رو به شاهزاده نشون میدادند اما اون هیچ علاقهای نشون نمیداد خلاصه کاملا معلوم بود که اون در وضع بدی گرفتار شده پری از دیدن وضع اون داشت دیوونه میشد یک روز شاهزاده که پریشان و ناراحت در اطراف قدم میزد صداهایی رو پشت سرهم شنید اگر به خودش زحمت میداد تا به بالا نگاهی بکنه مثل دیگران از تعجب دهنش باز میموند از آسمون کالسکهی بلورین که زیر آفتاب برق میزد آهسته نزدیک میشد. شش دو زیبا با بالهای براق با نوارهای قرمز رنگ کالسکه رو میکشیدن در همون موقع گروهی دیگه که همگی خیلی زیبا بودن بالای کالسکه پرواز میکردند. اونها حلقه های گل سرخ رو با خودشون حمل میکردند. توی اون کالسکه پری پریدامی نشسته و در کنارش هم شاهدختی که زیباییش هر کسی رو متعجب و حیران میکرد آرام گرفته بود اونها از پلکانی بزرگ پایین اومدند و رهسپار سرای ملکه شدند در طول راه همه دنبالشون میدویدند تا نظارگر اون همه زیبایی و شگفتی باشند طوری که باز کردن راهی از وسط جمعیت سخت شده بود از هر طرف فریادهای تحسین و تعجب از زیبایی شگف انگیز شاهدوخ به گوش می رسید. پریدامی گفت ملکه بزرگ، این افتخار رو به من بده تا دخترت شاهدوخ روزان رو که از گهوارش دزدیدم بهت برگردونم. بعد از اینکه فریادهای شادی و سرور آروم شد ملکه به پریدامی گفت اما آیا اون دوازده زیبارو رو از من می گیری؟ دیگه اونارو رو نمی بینم؟ پریدامی فقط گفت خیلی زود دلتنگیت رو از یاد میبریم و از نوع بیانش مشخص بود که دیگه از من هیچ سوالی نپرس بعد سوار کالسکه شد و به سرعت ناپدید شد خبر ورود این خویشاوند زیبا خیلی زود به گوش شاهزاده رسید اما دلشون رو نداشت که به دیدنش بره البته لازم بود که برای خوشامدگویی و عدای احترام به استقبالش بره تقریبا همون پنج ای که در حضور شادخت بود کافی بود تا متوجه بشه تمام جذابیت و زیبایی های دوازده دوشیزه کل سرخ که از نبودنشون خیلی آزرده شده بود یک جا در اون جمع شده. پس واقعا موقعی اون رسیده بود که با رضایت خاطر دل به یک محبوب بده. بعد از مدتی بدون اینکه بدون کجاست از اون خیشاون تقاضای ازدواج کرد. درست در لحظه که این کلمات از لباش خارج شد پریدامی لبخند زنان و پیروزمندانه سوار بر کالسکه ملکی پریان به اونجا آمد. حالا همه از موفقیت اون در انجام یک کار بزرگ باخبر شده بودن به شادخت اعلام کرد که قلمرو حکومت به اون سپرده میشه همینطور لازم دی درباره نحوه دزدیدن روزانلا از گهواره و تقسیم شخصیت اون به دوازده بخش شرح کاملی بده و اضافه کرد که هر دوازده بخش شخصیت اون شاهزاده میرلیفلو رو شیفتهی خودش کرده و حالا که یکی شدن و به اصل خودشون برگشتن اون یک نفر باید مرهمی برای دردها و شخصیت بیثبات شاهزاده باشه در مورد یک دلیل دیگه شیفتگی به روزان الله باید بگیم که حتی سورکانتین شکست خورده براش هدیه عروسی فرستاد و گفت که در جشنی که زودی با ورود مهمانان برپا میشه حضور خواهد یافت. شاهزاده میرلیفلور تا پایان عمر شخصی ثابت قدم باقی موند. روزانلا هم درست مثل همون دوازده زیبارو اون رو دوست داشت. اونها در کنار هم با آرامش و خوشبختی تا پایان عمر طولانیشون زندگی کردند شما هم خوش آقابت باشین دوست عزیز آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را زفر کنین؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی می کانال هزار افزان همون که دنبالش یک دنبالش. جایی که